ایران بازنگری در تاریخ قلمرو میانی هاییم که رو قاره های امروز داریم میبینیم به صورت قرار دادی گذاشته شده تمام این نام ها رو همین مردمان قلم روی میانی روی اینقاره ها گذاشتن چه اقیانوسسیه خود آسیا واجه اروپا حالا آمریکا که یکی از اینجا رف یک دریان نوردی بود گذاشتن اونجا همه این نام ها رو باز همین مردمان به صورت قرار دادی روی این قاره ها گذاشتن من واقعا نمیدونم دییخت این آدم میخونه دیگه باید من چه چیزی برای افزیم که بگویم شاهنامه کتاب تاریخی است، از نوشته‌های پیشینیان از زبان اوستایی بگیرید تا فارسی باستان و پهلوی و دری و زبان‌های بومی ایران از صغت بگیرید تو کردستان بزرگ پر از واژه‌های هم با گروه هند مثل آلمانی البته من میگم این تقسیم ما خودم قبول ندارم ولی خب چیزی که الان هستش به نام خدا با عرض سلام و ارادت خدمت شنوندگان گرامی و همراهان برنامه ایران وچ با امید به خدا در خدمت شما شنوندگان گرامی هستیم ما در این برنامه شروع کردیم به نقدهایی که به تاریخ نگاری 100 سال اخیر وارد هستش تاریخ که رسمی شده و ارز کردیم که ما این را رسمی نمیدونیم ولی خب در کشور متاسفانه رسمی شده و در نهادهای اکادمیک رسمی شده نقدهایی که وارد شده بود وارد هست و خود پژوهشگران این برنامه به اون واقف بودن به این نقدها اونها رو خدمت دوستان ارز کردیم در این برنامه هم متاسفانه خب ترکیب کارشناسان کامل نیستن و خانمه دکتر احسانی حضور ندارم ولی بقیه کارشناسان جناب آقای ایران مهر جناب آقای کلیمی و جناب آقای فیروزی حضور دارند طبق برنامه گذشته قولی که در برنامه گذشته دادیم میخوایم در این برنامه در رابطه با اسناد صحبت بکنیم چون که میخوایم وارد یک نوع بازخوانی جدید و بازشناسی تاریخ روی میانی بشیم میخوایم اسنادی که دال بر مهاجرت آریایی هستش؟ یعنی مهاجرتی که مبنای تاریخ نگاری در 100 سال اخیر شده، تاریخ نگاری دوران باستان ایران، دوران تاریخ ایران باستان شده، اون رو نگاه کنیم. اون اسنادی که وجود داره رو معرفی کنیم. این افرادی که معتقدند چنین مهاجرتی صورت گرفته، با چه سندی این رو میگن؟ چه سندی برای حرف خودشون دارن؟ و ما که مخالف این هستیم، چه سندی داریم؟ و پژوهشگرانی که در واقع در این برنامه مخالف این ایده مهاجرت آریایی ها از شمال به جنوب حالا قسمتش مبدایشو خب در موردش خیلی آشفته هستش آشفته گویی و پریشان گویی در میان پژوهشگرانی که این رو مطرح کردن داره در مورد این اسناد جناب آقای فیروزی از شما شروع می چون تو برنامه گذشته نبودیم و بعد می بیشتر از شما کار بکشیم در مورد این اسناد این پژوهشگرانی که معتقد به این مهاجرت هستند چه اسنادی رو دارن و چه نقدی به این اسناد بارده اصلا با این اسناد میشه استناد کرد و اصلا معتبر هستن یا نه درود بر دوستان گیرامی حاضر و شنوندگان ارجمند ببینید من یک سری نوشتهایی که از هر کدوم از این پژوهشگران بله. میتونستم جمع کنم رو اینجا آورده بله چه برای دوران تاریخ ناشناخته ایران و بعد چه برای دوران شناخش شده مثل تاریخ ماتابه بعد بله فقط می‌خوام با خوندن چند موردش ما قیاس کنیم کار اینها رو که با اسنادی ایرانی کردن و اسنادی که به ایران نوشتن با طرز و شیوه مطالعاتی در دیگر نقاط جهان دو تا نمونه از دوران پیش از ما تا که ما بهش میگیم دوران پیشدالیکی کیانی و هنوز رو ما نمی‌شناسیم ببینید یک شرخ شناس و ایران ایرانشناس چطور به خودش اجازه بده عقاید شخصی خودش رو وارد تحلیل یک سند کنه و بر خودش کنه بگه فلان چیز فلان جیزه. یا نیست برای مثال میگه که هرتل اثبات کرده بود که ویشتاس به کیانی همون ویشتاس پدر داریوش در درانه در خواهد و زرتوش به این آخه ببینید شما در مصد 13 رامسس دارید برای. که هم تو تو اصناس رامسس رامسس خوردن اگر این رامسس ها ایرانی بودن دوباره این آقای هرتل میومار همین 13 رامزس و میگه یه رامزس. درسته. حالا میانی کلامتون اتفاقا تو بین برخی از این موارد خیلی تو که کورش رو زرتشتی نمی‌دونستم، مثلا داریوش رو زرتشتی نمیدونن حتی به طور قطعی میگن که کورش زرتشتی نبوده. یعنی زرتش در این بره زمانی ظهور کرده و زرتش رو یه چیزی نزدیک به 2500-2550 سال پیش. آین میاره می بلد. بلد. بعد جلوتر می‌رم که وسط جملهش. میگه که از طرفی دیگه هرسفل سعی کرده است آنان یعنی این پادشاهان کیانیان را با پادشاهان کم و بیش داستانی مات یعنی به خوش اجازه داره کلمه کم و بیش داستانی رو وارد کنه اصلا حق نداشته این کار کنه این آدم هر وقت رد شد میتونه این بیاره میره جلتن میروی کورش متشابه با کیخوس روست بازرمریه پاچه‌ای تطبیق داره از دوران قدیم به پاچه‌ای که انروز اثبات شده یعنی هیچ جایی شما اینا رو بینید. و یه جاهایی هم که این در واقع زهاک را همون اجیده ها که مادی میدونه دقیقاً ده. بعد میای جلوتر میگه مارکوارد و نولدکه یا نولدکه ثابت کردند که بعضی از پهلوانان داستان های ملی ایرانیان یعنی همون که اصلا شاهنامه هستن یا تو گشتری اوسترا هستن از افوار تاریخی عهد اشکانیان اخر زمانی که اشا صعود میشه اشکانیان کجا بودن برخی از نوکارهای سرگذشت رو داستانی از زندگی اردوان دوم اشکانی به خاطر میاره یعنی این فاجعهطری نوع بررسی و تحلیل اسناد تاریخی است که دو تا ایرانشناس قدر این کارو انجام دادن این وضع ایرانشناسی به چه روزه کاری گرفته بله دوره همین آقای نولتکه میگوید که تزیاس فهرست خود یعنی پاتشان مات را موافقه گفته مادی ها نوشته چون اونها می‌خواستن به سبب حساسیت قومی مردمی خود دوام دولت رو بیشتر کنن یعنی این دیده چهار ها بیشتر از 32 در اسناد دیگه وجود داره ماتا گفته نه اینو ماتا خودشون دروغ گفتن طرف رفتن این آقا گویی کرده اسن گفت رفت برگشه گذشته گذشته رو نگاه کرده که مثلا مادی نشسته قصه میگه شما هیچ جایی نمی‌بینید که همچین جرئتی رو کسی داشته باشه راج به مثلا فلان سلسله از مصر یونان یا سند یه خط سند مثلا بین النهرین اینا بیان اجتهاد کنن این آقا اصلا فتوا صادر کرده بعد از همه اینا شگفت آورتر کاری که آقای الیف کرده. آقای الیف یه ماتشناس روسی بوده. یعنی دیگه واقعاً روسی هم نبود این آدم، ولی خیلی ارق گرایی شده روسا رو داشته. الیف. الیف است دقیقاً. الیف به لاتینش الیف نوشته شده. بعد این آقا خیلی جالب است. بسیار آدم باهوشی بوده. یک چیزایی فهمیدم جمله اش رو بردم ولی اومده دست و پا بزنه. برای مثال جمله اینه. رفته به کله منده داره متمرکز شده به این کلمه و دیده که این کلمه م... خب در سنت‌های 1001 پیش از میلاد به ماتا میگفتن بعد رفته دیده اه. این هم تو اسمای مادی دیده میشه و هم در هزاره قبلتر دیده میشه حالا جمره را شما نیاکنید میگه زبان منده از اسناد و متون بوگاسکوی شناخته شده پایتخت ایتیایی ها در هزاره دوم و متخصصان آن را جزء زبان‌های هندوروپایی می‌دانند یعنی تو اینجا خوشو اعترافم کرده حالا میاد جلوتر شیطانت اگر چنین باشد دیگه شما که زبانشناس هستی که داری چیز می‌کنی که پس احتمال نمی رود که منده سوم ارتباطی با منده هندوروپایی داشته باشد یعنی آقا میخواد هی hey, فرار به جلو کنه میگه بله گفتن منده اندوروپایی در باقاسکو هم دیده شده جلترام میره میگه مال ماتاس و اگر اینطور هم باشه اون ربطی به اون هزارمی نداره منده سوم به احتمال قوی همون سوبار و هوریان هستند یعنی آقا حالا برای فرار کردن فتوا صادر میکنه. اونگنات یه زبانشناسه نام منده را نه تنها با میتانیانیانی که با سوباریان پیوند داده بود، بلکه با نام قومی نیز منطبق می‌داند. یه زبانشناس این اجازه دوباره میاد گرچه لازم به ذکر است که منده در ترکیب برخی از اسامی مادی به کار رفته است از جمله خود منده، یا یماندانا، اوزومنده و غیره. اما این هم ممکن است اتفاقی باشد. یعنی دوباره اومده از حقیقت فرار کنه یه احتمال شخصیشو گوشه بسازه. انگار مثلا بوته آزمایش داشته. این را نیز نباید از رو داشت که در اواخر دوره باستان حالا این منوسی که اواخر دوره باستان نشی قوم منده در سرزمین ما در مجاورت هیرکانیان ساکن در جنوب قاین مازندران سکونت داشته است. یعنی باز از خودش صادر میکنه و بعد با چرقه اشتباه هیرکانی یا گورگانیا کجا جنوب دری مازندران و چطوریه متا دارن اما امکان ندارد که قوم منده در هزارمین داشته باشه ایرانی داشته باشد زیرا در این صورت با سری تاریخی نشان میدهد عناصر هند و اروپایی بسیاری در آغاز هزار دوم وارد شدن در تضاد بود یعنی آقا آذر نیست پارادایمش عوض کنه قاطی اینکه پارادایم فعلی بمونه خوردشن به این تضاد رسیده ولی دستپا میزنه که اینا رو یه جوری وصل کنه در اون جریان سری که نام میبره قرار بده یعنی خند آورد ترین نوع دستپا زدن در این کسانی است که اعتقاد دارن عناصر مادی و ایرانی و آریایی از هزاره یکم به قول نگاه دسته که هزاره دوم وارد شده باشن یعنی این کاملا یک نوع اعتراف و تسلیم شدنه بعد جلوتر میاد میگه که اعتراف میکنه دوره میگه با اطمینان میتوانیم بگوییم که ما هیچ اطلاعات و شواهدی دال برای اینکه اقوام ما غیر بومی و مهاجر باشن نداریم یعنی خوش اینجا ات... اعتراف میکنه ما بومی باشن به نظر ما فقط می توانیم از ورود برقی اقوام یانی زبان به بعد باتا صحبت کنیم حالا می خواد غیر ایرانی رو بده یعنی رسیده به این که ماطور ها اینجا بودن اولش دست و پا میزد که ماطور نبوده این دوتا منده ها دو متفاوتن. بعد میاد جلت میگه حالا باشه منده ها همون ها ماطان و اینا بومی بودن و این رابطی به عناصر ایرانی باتا ندارن یعنی این آقا قضیه رو فهمیده ولی ترسیده و می خواد توضیح کنه و باز این خوبه که باز این داره اعتراف میکنه به نکات بقیه اصلا به اینها اشاره نمیکنن بعد میگه مطرح ساختن این که ما تا فقط و فقط ایرانی بودن بی تردید محصول جاندوری قرض آلو و نظریه سطی اروپاییان است این نظریه مرد با دیدگاهای مردد متافیزیکی بنا شده است خودش آقا داره اعتراف میکنه این کوچ که جلوتر ولی میگه آقا اینا ایرانی نبودن اصلا هیچ ایرانی اینجا وجود نداشته این تا این حدی آدم به دست سپا و پا و ذلت افتاد هستیم اینقدر شماهای فیروزی داشته باشین تا اینجا ما یه شما یه تنفسی داشته باشین ما طول بعد دست شما متنیم همیشه در خدمت شما هستیم صدای امید رو میشناوید از سایت اینترنتی www.صدای شنوندگان گرامی اگر انتقادی پیشنهادی یا تذکری یا نکته‌ای رو دارید در مورد این برنامه و حتی برنامه های دیگر صدای امید میتوانید از طریق ایمیل info at صدای .com به ما منتقل کنید و همچنین شماره پیامک صدای امید سه هزار چهل و چهار و هشت هستش منتظر دریافت پیام ها انتقادات تذکرات و نکته های پیشنهادی شما شنوندگان گرامی هستیم نکته هایی که جناب آقای فیروزی فرمودن در مورد اشتباهات شرق شناسان اشتباهاتی که بعضا مشخص هست از ادبیات خود موضوع که بیشتر از روی شیطنت هست و تا جایی که خودشون به یه موضوعی رو یه واقعیت رو میرسن ولی به خاطر اون پیشفرزی که دارن که اون پیشفرز مهاجرت آریایی ها مهاجرت آریایی ها از شمال به جنوب دوست دارن حتی واقعیت های تاریخی رو بر اساس اون پیشفرز ها تعبیر بکنن و در واقع مصادره به مطلوب بکنن مطلوبشون در واقع اثبات اون مهاجرت هستش هر واقعیت تاریخ رو میبینن حتی اگر اون مهاجرت رو اثبات نمیکنه، تلاش مذبوحانه میکنن که چنین چیزی رو جا بندازن تا اینکه چرا برای اینکه میخوان تاریخ این سرزمین دیگه بیشتر از سه هزار نرسه از هزاره به اونور دیگه ایرانی ها هیچ کاره بودن و اینو در واقع میخوان یعنی مشخصه حالا ما خیلی بدبین نیستیم ولی ظاهرا اینه جناب آقای فیلوزی ادامه فرمایشات شما رو من میگم من دو تا مورد دیگه بگم هست همین آقای داغ علیف و دو سه نفر دیگه ببینید حتی اومده یک فرار به جلو دیگه درصد آینده کرده ما یه نشستی داشتیم در دفتر امرداد من اونجا یه جمله شد هی دنبال رفرنس این صحبت بودم که اونجا گفتن که هر گردوی گردو نیست برف از قبیله مخرانو این شبیه مهران هست و این کسی نل بگین دوتون شبیه هستن مهرانی ها بودن و اینا ایرانی بودن و از این صحبت ها. این مهرانو فرق داره. من این ازتم پیدام یه علیه فیون نوشته و چقدر مذبوحانه بود. ایشون شماله گفته که در اسداد ما داریم که در زبان ارمنی مار برای مات ها به کار میرفته. بعد این مرانو مهرانیان هم یکی از جمعیت های مادی بودن. اینم هم میگه. بعد میگه می می این میخررانو هیچ بمارها و های مادی نداره. به ثاره که دقیقاً دو ژورگافیشون همون جای ماتان در زبون ارمنی هم هست. یعنی این حتی املن اینو صد کردم برای آینده که اگرش کسی دوباره به این نکته برخورد کرد با این پاتک اولیه قرار گرفته باشه، روبرو بشه و اصلا منصرف بشه ولش کنه فکر ما تو نکنه و پیش بره. یعنی تا کجاها اینا فکر کردن. بعد حالا این مسائل قدیم هست. مسائلی که فعلی که ما به رسمیت داریم. حتی عمر این چهار تا پادشاه مادی که هروودت الان هروودت موثق تیم سند یونانی برای ماچیناسیس، بزخوآسار آشوری که مادت مونتون آشوری این چهار تا پادشاه معرفی که حتی به اولیش راه نکردن یعنی گفتن که پیش از این دیاوکس را به صورت دیاوکوی مانای شناختیم که سراگون فرمان آشوری او تایید کرد یعنی حتی حاضر به این نبوده که قبول کنه این دیاوکوی مادی که ارودت توصیفش کرده و بعد یونانی بعدی به همون صورت توصیفش کردن یا ادم متفاوض از, از اون دیاوکوی بدبخت مانایی که تایید شده دوره قزیس رامسسه من و اینا میخوان هر جوری شده این پادشاهانی که به اسم کم کنه کم کنه کم کنه, کنه و بعد میگه داستانی که هرودوت گفتن عجیبه میگه همه جا حال درست میگه هرودوت واسه این غربی ها اینجا داره اشتباه میگه این خیلی خنده داره جملات شما نگاه کنید اما نباید فرموش که دیوک آنگونه که هرودوت توصیف کرده شخصیت تاریخی نیست یکی از روایات قدیمی اعمال شاهکان زیاد یادشوری فوق شاهکان مادید را در نام دیوک و روایتی که در آن وخشتر متمرکز کرده اولین پادشاهی ماد رو در آن زمان امپراتوری دولت ماد تشکیل داده ساخته است با اینکه پیدایش دولت ماد در عهد دیوک بسیار ساده لوحانه و بی‌پروا به تصویر کشیده شده است شما به چغی اومدی به یه متن باستانی که راجع به ساختن حالا همین پادشاهی مادشونه که در حد دیو هرودوت هست توهین می‌کنی و میگی ساده لوحانه شما در بنیان گذاری ماد از دیو هرودوت توهین می‌کنید شما در هیچ نقطه ای از درانی میتونه همچین پژوهشگرانی ببین جز برای ایران و این فاجه ها رو بدت از این فاجه بدتر اینه که اینا ایران درون در اون هم ادامه دادن و یه خط جواب ننوشتن و اتمند غیرت بعضی خارجی ها مثل آقای نورمن خیلی بیشتر از برخی از ایرانشناس درون کشوری بوده که اونجایی که گفتن الواه و آر ارشام تقلبین آقای خارجی ما وایسه گفتن شما دروغ میگید و یه ایرانی بلند نشه چی چیزی بزنه اکوات ماچنوس ایران هم برای اون که ادعا میکنن ماچنوس هستیم همین اکواته اینا هر کدوم باید پاسخ داده بشه خب بس به اینجا حالا کشیده میشه که میگن که ایرانی ها آگاهی تاریخی نداشتن و براشون تاریخ گ بوده ما امروزتون نیست از نوشته های غربی ها تاریخ و بازسازی کنیم و از توهم درشون بیا بله دقیقا هم همینه مثلا برای ما اومدن چهار تا پترخ می گفتفتن گی اوکوو بود و فروردتیش بوده اون نه بخششطرره بود و ژده هاتی هم چهارتا بودندن دهون شده و رفت دقیقا که ما صع های داریم که تابقا ایرانیان حدات داخل ااشکانیان و تا سر ساسانیان این یکی از مرجع‌های های موسق تاریخ نویسی م. بودن به طوری که در ارم ساق ساخورنی جمبلش هست. آرزو می که تاریخ نویسی ارمنی در هر نویسی ایرانی بشه یا حتی در تورات هست که اینا بلند شدن یهودی ها به دربار پاچه پچه اومدن آقا این فلام نکتر رو ما باید اجرا کنیم بعد تاریخ نویسی اینقدر دقیق بوده که رفته تو کتاب اون رو گشته فلان نکته به جزئی رو پیدا کرده اون کار رو اجرا کرده. این تاریخ نویسی ایرانی دقیق بوده تو پاینش کیه مجب بوده نه این تخنیسی این اتهام زدن ها به خاطر یک دوره کوتاه ساسانی، اوایل ساسانی که حالا سندا دستکاری کردن، نمیتونه تعمیم درش به کل ایران باشه. بگه کل ایران در تواهم گذشتهش بوده و ما حالا باید ببینیم روز تاریخ نه اینطور نیست. ما حالا دو گروه، سندو میخوایم در آینده بررسی کنیم. یکی این اسنادی که مدعیان مهاجرت دگرنگام آریایی هستن، اتکا می‌کنن به اسنادهای میان رودانی انوری اول و عینن این همون میخوایم پیاده کنیم برای هزار سوم ببینیم آیا قابل پیار سازی هست یا نه بله. خیلی متشکرم جناب آقای فیروزی که در دو تا پنل حدودا 8 دقیقه‌ای فرمودید حالا اگه تو این قسمت رسیدیم به بفرمائید شما ادامه فرمایشات شما رو میشنویم و اگر نشود نکاتتون رو نگه دارید ما خدمتتون خواهیم رسید چمدگان گرامی خیلی متشکریم از حوصله و اوشانن شما به برنامه ایران وچق جناب آقای ایران مهر گرامی پیرو صحبت های جناب آقای فیروزی که شرق شناسان به چه راحتی وقتی که ببینید در عالم علوم انسانی معمولا خب وقتی فرضیه ها مطرح میشه بعد وقتی که به اثبات میرسه هر کدوم از داده ها که جمع میشه روی تک تک داده ها باید میگن آخه یه اصطلاحی هست که میگن تک تک این هایی که محقق میگیره در حکم ناموس اون محقق هست یعنی باید به طور دقیق به اون برسه ولی ما میبینیم که خیلی راحت همون نکاتی که ایشون فرمودن خیلی راحت این نکاتی که میتونه در واقع تکلیف تاریخ یک کشور مشخص بکنه خیلی زود مصادر مطلوب میشه و بعد دور انداخته میشه و یا مثلا به نفع اون مطلوب خودشون میان از این به نفع تحلیل خودشون میان از این مطلوبشون استفاده میکنن شما در واقع در مورد این اسنادی که استفاده میشه برای این مهاجرت که هیچ دلیلی برای این اسناد وجود نداره به غیر از اینکه تاریخ ایران رو به قبل از هزاره دوم پیش از میلاد در واقع نکشونند و از همون هزاره اول قبل از میلاد مسیح به زور ب که تاریخ از اینجا شروع شده اوجا به قبل هیچ خبری نبود بله. سپاسگزارم درود بر شنوندگان گرامی، حدمتون بگم که بله وارد بخش اسناد شدیم باورمندانه به کوچ در هزاری دوم یا همون آغاز ورود ایران یا به قول اوناب در هزار اول کلن اون چیزی که دادن و بنده تا حالا دیدم یک دونه سنده سنده تیکلت بل اثر ثوم شای آشور 835 پیش از میلان. من سند دیگه ندیدم بدن اما میگم شما اگه دو سه نشستم وقت بدین ما حتی یک دو درصد سندامون هم نمیتونیم اینجا بره شما در نقض اون صد س... سندی که اونا به اموال تک سند ارائه دادن اون سند سر جاشه اونا میگن این اولین سند از نشانیه که ایرانیا دیده شدن خب اون سند بود این چی هستش سندی که شاه آشور درسته تکلث بلصر سوم سندی ارائه کرده در جنگ بیت هانبان که گفته ما با اینا جنگیدیم با مردم اون ورزاگروس و تاریخ 835 پیش از میلاد گفته حالا ما آدمایی به نام اونجا تو سند آدمایی به نام پارسوآ یا پارسوماش, پارسوماش و آدمایی به نام مادای ما برخورد کردیم جنگیدی با اینا اینا میگن این اولین بار که از این نام برده شده حالا اگه بنده یک سند برای شما بخونم که مثلا سارگون اکدی 4350 سال پیش با همین آدما با همین نام برخورد کرده یعنی اینا دیگه اصلا باید جمع کنن دیگه بایدنم. درسته؟ حالا میخوایم ببینیم ما چه داریم برای ببینیم یا نداریم کلا درباره تاریخ ما ما ایرانی‌ها تاریخ سرزمین خودمون رو بد آموختیم و جالبه که هنوزم بد میآموزیم تاریخ میهن ما رو دیگران نوشتن نه خودمون ما میراث مادران و پدرانمون رو از دریچه چشم دیگران تا حالا نگریستیم دیدیم دست. و این دیگران نیز بیشتر نه تنها بیگانه بلکه دشمن بودن من. حالا مثلا ممکن این پرسش پیش بیاد که اینا چه دشمنی دارن اون چیزایی که آی فیروزی فرمودن مثلا اون علی ها این کارا رو کردن ببینید هرجی بر اونا نیست اون کار خودشو رو میکنه دنبال اهداف خودشه ما باید گلیم خودمون رو خودمون از آب بکشیم ما خودمون باید نگاه کنیم درست به این اسناد و اونا رو تفسیر کنیم. معلومه وقتی ما بشینیم اونا میخوان خودشونو به من دیگری تعریف کنن هر جور که دلشون بخواد به خاطر منافع امروزشون تو جهان تاریخ رو هم, هم جوری تعریف کنن. بنابراین ای خیلی ایرادی به اونا نیست، اراده اصلی به ماست. دکتر جانشیر درخشانی میگن که بر پایه‌ی دیدگاه غالب کنونی حضور ایرانیان در فلات ایران از آغاز ازای دوم پیش از میلاد پن میشود. اما باید دانست باور کوش برگرفته از اندیشه فاشیست به اروپایی قرن 19 است که خواستگاه ایرانیان را شمال اروپا میداند. متاسفانه تاکنون نگاه ما ایرانی ها برای دریافت تاریخ به غرب بوده اما ما نباید نشانه خانه پدری را از بیگانه بگیریم این کاملا حرف منطقی من استاد جوندی میگن برای ایرانیان از روزنی چشم بیگانگان به جهان نگریستن راه رستگاری نیست و از دیدگاه آنان به ایران نگریستن مایه شرم ساریست. ببخشید مگه ما چه مگه سند شاه آشور یا سند شاه اکاد یا سومر مگه ما ببخشید نمیتونیم ببینیمش نمیتونیم بخونیمش مگه موجود نیست مگه در دسترس ما نیست مگه حتما یک اروپایی یا آمریکایی باد بخونه برای ما تفسیرش کنه سره همش کنه پلخ... من نمیدونم تو حوزه تاریخ ما اصولا ما چرا اینطوریم؟ پل خوب در کشوری که برای هر مقاله یا پایان نامه، بدون اینکه که به خود متن نگاه کنم میان به منابع نگاه میکنن و هر جا منابع لاتین و منابع انگلیسی از همه بیشتر باشه خب این چیز دیگه نمیشه که شما غیر از چیزی که شما انتظار نباید داشته باشید و متأسفانه این افتخار و پوز این که مثلا پایان نامه من تحقیق من پژوهش من اینقدر منابع خارجی و انگلیسی داره این چیزا هم داره متأسفانه این از بی بی‌سوادیه دقیقاً با... یعنی که من نمیتونم سند سومری رو بخونم منتظر شدم تا آی اروپایی بره سند سومری رو بخونه، تفسیرش کنه بعد من برم تو کتاب اون اون تفسیر رو بخونم. یعنی عین بی سوادم. یعنی دیگه اعتراف از این اعتراف روشنتر نمیشه با. با. دیگه. ببینید ما وقتی میگیم اسناد سند داریم منظورمون کتاب فلان آی دکتر بهمان نیست. آی دکتر فلان در کتاب بهمان رفته سند رو دیده و تفسیر و استنتاج و استنباط خودش رو نوشته. اما وقتی ما میگیم اسناد منظورمون ریگوداست و منظورمون نوشته های اوستایی و پهلوی هیتیایی آشوری اکدی سند کتیبه هیروگلیف مصریه ما فرض کنین منظورمون نمودارهای دیرین هواشناسی جهانه منظورمون اسناد متخن ژنتیکی که تازه بررسی دانشگاه معتبر جهانیون منظور از سند ایناست بله. سند که کتاب های دکتر فلان دو... بیش میگه آقا خوندیدی دیدی گزارش مثلا شولگی رو دودمان سوم اور اصلا دانشجوی تاریخ ما اصلا فکر میکنه شولگی یه جور شکلاته اصلا نمیدونه چی هست کی هست مانه. خوب خب بعد از این انتظار داری تو بره سندش رو بخونه میگه آقا تا وقتی که ایران کمبریج هست تاریخ ایران کمبریج برو بخون علمی چیزی یاد بگیری اینا چیه میگی حالا میان كلام شما این كلام شما هم خب دیگر دارید یه تنفسی داشته باشید حالا شما حالا با یک هسته و با یک عشق و در به این ایران به این سرزمین دارید ما هم با شما همراه هستیم و خب شما یک هسته خاصی دارید با انرژی خاصی صحبت میکنید خیلی برای من این هم جالب هست تو چون تو رشته علوم سیاسی و گرایش مسائل ایران که خود بنده کار میکنم برای من عجیب هست. هنوز هم اینو من نمیتونم بپذیرم که استاد علوم سیاسی این مملکت برای جدیدترین واقعه واقعی این مملکت مثلا برای واقعی انقلاب اسلامی خب برای تحلیل واقعی انقلاب اسلامی هم دنبال منبع و رفرنس خارجیه یعنی تو این مملکت ببخشید یه آدم یه احمق پیدا نمیشه که مثلا درستابی واقعی مملکت رو بیاد مثلا تحلیل بکنه دنبال مثلا آثار مثلا خانم تدایسکاچبول خانم تدایسکاچبول رفته اومده ایران یه مقاله ای در مورد مثلا وقایع انقلاب نوشته آقا به اون استناد بشه یا مثلا تحلیل هایی مثلا آقای میشل فوکو تحلیل های مثلا آقای ماروین زورنیس تحلیل های مثلا چیو بگم مثلا آقای رونالد جیلکوپ مثلا خیلی برای من این نو غرب گرایی توی علوم انسانی هنوزم من نمیتونم اینو بپذیرم که حالا پایان نامه مثلا شما میخواهید در مورد لیبرالیسم پایان نامه بنویسید میخواهید در مورد مارکسیسم پایان نامه بنویسید میخواهید در مورد مثلا هگلیسم پایان نامه اشکالی نداره اتفاقا برید از منابع اصلی رفرنس های اصلی نوشته های مارکس نوشته های اگل به زبان اصلیش این چیزی رادی نداره ولی که شما میخواهید مثلا در مورد انقلاب اسلامی که این انقلاب اسلامی چرا به وقو پیوست جامعه شناسی این وقعه. این مثلا استاد علوم سیاسی این مملکت سم به جون یه دانشجو رو مثلا بفرسته که مثلا بره تو کافه جامعه روزنامه‌های اون موقع مثلا اسناد اون موقع رو مثلا مورد بررسی قرار بده بورو مثلا بورو ببین رонаلد جیلکوپ چی گفته بورو ببین مثلا خانم تادیس کاشپول چی گفته برو به فلانی کیک فلان خارجی چی گفته که چی مثلا تو منابع و رفرنس‌هاش اسم مثلا اون کلمات انگلیسی انگار اون کلمات انگلیسی مثلا آیات توراتشون انجیلشون مثلا اونها مقدرن مثلا شفا میدن مثلا خیلی برای من عجیب است و هنوزم نمیتونم اینو در واقع بپذیرم یه چند ثانیه ای ما تنفذ میگیریم بعد ادامه فرمایش از شما رو میشنیم بنامه ایران وج رو میشنوید شنوندگان گرامی از صدای امید این قسمت قسمت هشتم برنامه ایران وچ هستش در خدمت جناب آقای ایران مهر هستیم و ادامه فرمایشاتشون رو میشنویم چون ما می‌خوایم این چارچوب تاریخی رو تو این برنامه رس کنیم بله ما دیگه تمام جزئیات تو طبیعته که نمی‌رسیم بگیم همه مردم ایرانم هم شناس بشن جنب بشن تاریخ ایران رو نمیشه گفت ما می‌خویم چارچوب رست کنیم بعد شاید یک عده پیدا بشن تحریک بشن برن این جور رو دنبالش برن و به قول معروف همین اسنادو پیگیری کنن بله. ما فقط اشاره می دیگه به هر قسمت. ببینید من در یکی دون شص پیش گفتم اینها اومدن اسناد تاریخی هر مملکتی رو نه ایران رو بررسی کردن از رو اسطوره جمشید که گفته شده سه بار به طرف آفتاب یا به طرف جنوب آمد به طرف جنوب آمدن رو نتیجه گرفتن اون کاری بله. که صدای تاریخ ما نمیکنن دیگه میگه بار کتاب فلان اروپایی رو بخون یاد بگیری. خب بند خدا اروپایی این اسنادو او کتاب نوشته دیگه خب تو برو بخون بله اینکه از این بنابراین میگن حالا که ایرانی ها اینجا بودن و تو اسطانه دمشته سه بار به طرف جنوب آمدن پس حتما یک جایی در شمال بودن که بعد آمدن دیگه این رو میکنن بعد میگن اسطوره بعدی فریدون سه تا پسر داشته سه شاخه شدن خب به اوردوت مراجعه میکنن میبینن خب ماد و پارس و اول قول این پارت هم از کجا در آوردن چسبون میگفتن سه تا پارت پارس ماد اینا اینا که اینجوری شدن تا اینجا هم که درست شد. خدمتون میگم حالا باید به این داستان اولا که میگن فریدون جمشید که اصلا میتولوژی بوده اصلا نبوده اونا که نبودن یک افسانه این کوچه رو روایت کرده بله. اینو میخواد بگه حالا ما بعدا میگیم تو این دورهاش که اصلا این استنباط اینا از این آمدن جمشید به سمت جنوب چقدر خنده داره یعنی واقعا این غربی یا بی یک جایی بدجنس هستن اما خودشون هم واقعا بی حالا ما ثابت میکنیم بی عقلی دست تو همین زمینی که خودمون داریم کار میکنیم با سند بعد حالا زمان باید بدم به این دیگه این که هی میگن هزار اول اومدن هزاره دوم آمدن آه یک کلام بعد ما در وقعه هزاره دوم خواهیم گفت که اصلا تو اج چی گذشته موضوع چیه اون شبه جزیره یونان یعنی چی اینا همه رو خواهیم گفت فقط بهتون بگم اینا آغاز شهریگری در یونان رو یونان رو به عنوان یه دیگری در برابر ایران تعریف کردن که اصن چیزی نیست اما تعریف کردن حالا بعد برین یه زمانی برای شهریگری میگفتن شهریگری این یه چیزی زیر سه هزار ساله اون چیزی که اینا تونستن از تو المپیکا ها و اینا در بیاد. حالا من بگم المپیک رو پرسوس پسر آکریسیوس راه اندااخ اونجا حالا اینم باید جالب دیگه دیگو داستانی داره خدمتون بگم که بعد زمان میدادن به این کوچی که برای ایران تعریف کردن. اون زمان آقا اینو براتون بگم این باید کمتر از زمان شهریگری در یونان می بود. اینان نه اینکه، اولین سند گزارش شده از میان رودان نسبت به ایران رو خونده باشن گشتن و آخرین سند رو پیدا کردن ها. چون بعد اون دیگه تقریبا رسید به آشوری بانی پال گزارشش درباره ایلامه بهشام نابود شد آشور آخرین سند رویا روی اینا جنگ بیت 835 پیش از میلاد گفتم آدمایی به نام پرسوه یا اینا رو تقریبا دیدم و مادای خب من براشون میگم که بسیار خب شما این پارسوه یا پرسوه یا, یا پارسوماش رو پارس حساب کردین دیگه در 835 بیشه از میلاد خیلی خب من امیه سند میدم 4500 سال پیش سندی از لوگل آنه مندو شهر ادب در میان رودان اینشون نخستین بار نام پرشی رو در سندش ذکر کرده سرزمین پرشی بعد میگن نخیر این پرشی که چه ربطی به پارس داره میگم چطور شد پارسوماش تو رب داره پرشی ما دیگه رب نداره بعد میگم خب خیلی خب سنده دی دیگه سارگون یکون فرمان روای اکت چار هزار و سی و پنجاه ساله پیش از سرزمینی به نام پرخشه پرشی یا پرخشو نام برده در پیونده با سرزمین ایلام میگه نه آقا پرخشا چه ربطی به پارس داره میگم تو میگی پارسوماش همون پارسه. دیگه پرخشه ما دیگه این دیگه سارگون اشتباه یه جای دیگر رو گفته اشتباه گرفته فقط همون تیکلت بل اثر سوم شما اون درست گفته فقط میگه این مادای رو هم نام برده میگم خب مادای اولا مادای خونده نمیشه و مدای خونده میشه باشه نام برده باشه برای شما سند میخونیم گودعا فرمان روای شهر لگش در میان رودان 4150 سال پیش از سرزمینی به نام مده کی نام برده اون کی پسوند نام خاص میکنه اینو بعد شلگی فرمانروای دودمان سوم اور ۴ سال پیش در سال سی۸م فرمانرواییش اقدام به احداث باد مدکی کرده یعنی بین سرزمین خودش و سرزمین ماد یک دیوار دفاعی کشیده. میگن نه آقا مدک اصلا یه چیزی هم میدون میگه چطور شد؟ مدی شما ماده ماد مده مادیگه شلگی نمیفهمیده فقط اون باز شاید آشور میفهمیده. میدونین وقتی نخوان یک چیز قبول کنن، حالا شما دیگه 100 سند بگو من حالا تا شب برای شما میخواین تا فردا صبح می‌خوام این سندارو بخونم من دو تاشو خوندم نه اتفاق برای برنامه بعدم نگران دارید هنوزم میخوام من فقط بله. خواستم به بله. شما بگم که جد داستان چیه آقا این شهریگری نباید قبل از شهریگری یونانی که اونا تعریف کردن تعریف بشه مرضشون اینه اینا همه هم دور همین دور میزنه دیگه وگه این از سنده هست اونام خیلی بهتر از من و شما ما اینا دستشونه خوندن ترجمه هم کردن اما دیگه اون رسانه هاشون اونا نمیذارن اینا به ذهن و زبان کسی برسه سپاسگزارم حالا اینا رو ما باز. نگان گرامی از سایت اینترنتی www.sidaeumid.com صدای ما رو می‌شنوید از برنامه ایران ویژ قسمت هشتم در میان کاشناستان هزیر میرسیم به کاشناست زبانشناسی برنامه جناب آقای کریمی گرامی جناب آقای کریمی زبانشناسی چی میگی در مورد این در رد این و در واقع اثبات کهانتر بودن تاریخ و مدنیت در فلات ایران چون بالاخره برای هر چیزی میشه جواب داد میشه گفت که این اسناد ضعیف هست ولی زبانشناسی روی که دیگه نمیتونن کاری بکنن به نام خدا با درود فرقان خدمت شناندگاه گرامی و مهمانان باید بگم که در ریاضی ما میگیم فرض روی فرض محاله بیایم اول فرض بکنیم یه چیزی رو فرض هم یه فرض دیگه بکنیم اصلا کلم باطله باطل میشه بله ما فرض بکنیم که کوچ کردم بعد بریم روی این فرض همه فرزانا رو بزنیم اصلا اول باطله اصلا بر خود اصلا علم منطق همین رو باطل می‌کنه بله کاملاً همین چیزی هستش خب اصن زموشاصش بسیار زیاده در زمینه ولی خب من تو این برنامه فقط خواستم یه پارتو پارس و بیام ریشه یواش بکنم مثل شرمانگانی گرامی خب درباره نام پارس و پارت باید بگیم که هر دوی این نام ها واقع اصلا یکی هستن. یکی هم برای. پس بیایم جدا کنیم بگیم پارت ها فلان جا، مات‌ها ها فلان جا، پارس اومده فلان اصلا اشتباهه چون پارت و پارس اصلا یکیه خب من سندهای مختلف آوردم، هم ایرانی هم اروپایی. خب بیشتر تاکیدم رو ایرانی بوده. جناب دویتو چنگیز مولایی که استاد مسللم زبان پارسی واسون هستن، ایشون استاد عاشق تبریزن. که هم در دانشگاه به عنوان رفرنس معرفی میگردد، می, می که کلمه اخیر مزوش آن پارته با یک اختلاف آوایی که یکی از وجوه افتراق زبان فارسی و مادی میواشد گونه دیگری است از پارسه کتاب راهنمای زبان فارسی باستان روی دیویس عشایانوی گرامی من درخواست می که با دقت فراوان به این بحث شناسی توجه کنن زیرا در هیچ کتابی چه داخلی چه خارجی گونه گسترده و پرده نشده است می توان خودشان برن هر کتابی که دوست بخونم و خودشون مقایسه کنم. این در ما کوشش می کنیم افسون بر ریشه‌های آریایی نخستین که اروپا یا بهشون میگن هند اروپایی ولی از دید ما آریایی نخستینه و اوستایی سانسکریت و پارسی باستان از زبان های بومی ایران و دیگر کشورهای آریایی هم استفاده کردیم بوزوق تا آرمانم از این کاری که وقتی مردم بومی ایران خودشون رو ببینن که تو زبان اوستایی، سنگسریدی، پهلوی، فارسی باستان تا کشورهای اسکاندینابی این واژه‌هاشون کار برده می شده این اتحاد به رفته پیدا می‌کنن که اونا هم تو این کار به ما یاری برسونن یعنی اینکه ده باید گسترده بشه تمام از کردها، لورها، بلوچها، سیستانی‌ها، مازنی‌ها، گیلانی‌ها، آذری‌ها همه و همه از دید ما همگی ایرانیانند از همه دیده ما همه اینا آریاییان حالا این بخشی که اینا میان تقسیم میکنن حالا باید در موردش صحبت میکنیم خب سه برای نام پارس سه تا ریشه با های که الان خدمتتون میگن نام بردن من هر سه ریشه رو به خاطر که تحقیق انصاف رایت شده باشه آوردم بیان کردم یه ریشه از ریشه جدا کردن و بریدن گرفتن ریشه دوم از خم کردن گرفتن ببینید ما از واژه خم کردن اومدیم واژه پهله و دنده رو ساختیم و از این دوباره گسترش معنایی داریم واژه کنار و ساحل و کناره رو ساختیم. برای همین بود که من تو برنامه پیشین خیلی تاکید میکنم که باید کسایی که اتیمولوجی کار می‌کاره، شاخصی کار می‌کنم، باید معنی شناسی هم 100% کار کنن. و کتاب های دکتر کوروش صفوی رو معرفی کردم. بعد قسمت سوم از ریشه که گفتم به نام گذر کردن و رد کردن از این دوباره معنی لبه و بیرون رو گرفتن کنامه کلمه فرای فارسی هم از اونه فراه میگه؟ فرا بله, بله. کنامه بیرون و لبه رو گرفتن باز دوباره از این رسیدن به ساحل کناره خب حالا ما اولی رو شروع میکنیم بحنی جدا کردن و ضربه زدن و بریدن در آخر از دانشمندایی که در دا این باره پژوهش فراوان داشته است، میتام به شادروان دکتر جمال‌شاه درخشان اشاره کرد ایشان در کتاب خودشون که دانشنامه کارشان هست جلد 3، رویه 307 و 9 در این باره به گستردگی توضیح داده. منظور جناب آقای کریمی از روی همون صفحه هستش. خب صفحه بله کلمه عربی هستش. روی اینو برای شنوندگان عزیز توضیح میکنم بلده. که چون شاید این کلمه راشون نامأنوس باشه. مثلا در پایان نام پارسیان و پارسیان رو به معنی دارندگان تبر جنگی معنی کرده و از ریشه و های زیر هم استفاده کرده. گفتیم مثلا ریشه پرتره به معنی جنگ و نورد در زبان فارسی باستان بعد در زبان اوستایی هم شما پرد و تیزی کردن و جنگ کردن رو دارین که این کتاب دوستان این واژه رو در فرهنگ های اوستایی احسان بهرامی و یاری فردین جنیدی رویه 891 ببینند. بعد استاد استاد مسلم ریشه شناسی باید بگم استاد دکتر حسن دوست محمد حسن دوست یک واژه‌نامه که ایشون بیرون دادن اومدن گفتن که واژه پرسو و واسه سه نقطه به تبر در فارسی باستان هم استفاده می شده پس ببینید از ریشه پرتره در زبان فارسی باستان پرت ونسه سریزه کردن در زبان اوستایی و پرستو به معنی تبر در زبان فارسی باستان یعنی ایشون با کنار هم قرار دادن این واژه ها اومدن گفتن خب پس ما نتیجه میگیریم که این ریشه پارت و پارس که گفتیم یکیه بعد یه سری بین جنگ کردن یه سی تیز برنده جدا کننده باشه خب ما از این واژه ها الان واژه نورد رو در فارسی داریم که از پیشوند نی که حرکت به سوی پایینه تشکیل شده علاوه همون ریشه پرت اوستایی که واژه نورد کرده، حتی آوردگاه هم اصلا می ریشه است که پرد شده ریشه پرد شده ورد که آورد یعنی جنگ کرده. سرانجام میشون دست روی 311 به این نتیجه میرسد که باید این از ریشه پله هندو اروپایی که ما بشمیدیم آریایی ولی هندو اروپایی به معنی کوبیدن و ضر بزن و کردن باشه و از این رسیده به واجه پارس و پارت یعنی که پارت و پارسا ها به خاطر توری که داشتن به خودشون میبیستن این اسم بهشون دادن بعد اومده گفته خب نام تور که تپور هم از اون گرفتن یک قلبی از همین واجه است که دکتر گراشویچ هم یه مقاله‌ای تو این زمینه نوشتند در مورد قلبم باید بگیم مثلا که در موقع خودش حتما صحبت میکنه ولی یه نمونه میارم مثلا نمره اوستایی الان ما میایم جای رومه و عوض میکنیم میشه میگیم مش میگیم نرم ببین ویژگی در زباشناسی میگن قلب یعنی اون گفتن روی پارت اومد قلب شده شده تپور و شده تبر پس ریشه اتیمولوجی که نام پارس و پارت داره یعنی دارندگان جنگی که حالا به گویش میگن خب چه چیزای مثبتی داره و چه چیزای منفی ریشه دوم ریشه پر و پره به معنی خم کردن و قلز زدن خب ما در اوستا سنگسوید و زبان بوم، بومی زبان‌های بومی واژه پهلور رو از این ریشه ساختیم واژه پهلو پهلور خب شما شنونده میگن خم کردن یا قلز زدن چه ربطی به این واژه داره استاد حسن دوست دو کتاب فرهنگ ریشه‌شناختی که تازگی به بازار دارن بعد بگیم میان ثابت میکنن که در زبانهای هند و اروپایی بیشتر اعضای بدن مثل دست، پا، خود دست هم بیشتر مثلا پا، گردن اینا شکم حتی اینا همه از واژه خم کردن بوده یعنی از این واژه اومدن واژه ساختن یعنی از واژه خم کردن اومدن واژه دنده رو ساختن از دنده رسیدن به واژه پهلو که همین الانم هر چ... کنار هر چیزی میگیم پهلو پهلوی مثلا فلان بله. میگیم پهلو بعد خدمتشون عرض کردم که ما خب در برنامه پیشینم یکی کتاب معرفی کردن که دو تاش داره هم که خدمت ما از کنم از دکتر کوش سفری بود که استاد دانشگاه علامه تحانی هستن باز من تایید میکنم بدون خوندن کتابایی که در مورد معنی شناسیه ریشه یابی بکنم مخصوصا تو جای تاریخی 100 درصد به ایراد خواهند رفت حتما باید این کتاب رو مطالعه بکنن بعد دستور تاریخی مطالعه بکنن وادشناسی یا وادشناسی تاریخی بعد برسیم به اینجا خب زبانشناسان اومدن از این ریشه ریشه پر یا پر به معنی خم کردن و قلد دادن اومدن گفتن یه واژه آریایی نخستین که ما میگیم و اونا میگن هندو اروپایی باید به نام پرک به معنی پهلو موجود میبوده یعنی وانو کو پاس‌سازی کردن به قول خودشون گفتن یه واژه به نام پرک که خودش برگرفته شده از پر و پر هستش به معنی پهلو بعد در زمان 1000 و 400 پیش از میلاد ساخته شده باشه خب ما صد مثال از زبان‌های بومی ایران در اینجا می‌یاریم که ببینن که این زبان‌های بومی ایران چقدر دیرینگی داره خب ما چجوری می‌تونیم بپذیریم که مثلا قوم‌هایی که الان ما اسمش رو می‌بریم این واژه‌ای که برای 1400 پیش از میلاد رو هنوز داره استفاده می‌کنه بعد چجوری میتونیم بپذیریم که اینا اومدن مهاجرت کردن یه قومی قبل از اونا اینجا بوده و اینا اومدن واژه هزاره چهارم پیش از میلاد و بدون هیچ فصائل رسانهی ابزار نمیدونم تبلیغاتی بدون هیچ حکومتی بدون هیچ زوری بدون هیچ سامانه اداری کتابتی کتابت اینا رو بخونونن به اون قومی که زبونش به کلی با اینا فرق میکرده و بیان واژهای اونا رو عوض می‌کنن، حتی دستور زبانشون رو عوض کنند این خیلی جالبه. شما باقی کلمی عسخایی میکنم چون وقت برنامه رو به پایان هست. نکاتی که میفرمایید خیلی ارزشمند هستش. اینا رو حتما نگه دارید برای برنامه بعدی. شنوندگان گرامی، عسخایی میکنم که برنامه تا یک دو دقیق هم بیشتر از 45 دقیقه طول کشید. شما رو تا آغاز قسمت نهم برنامه به خداوند متعال می‌سپارم.